کما ملعت زلمن و جورا عوضو من الشیطان الرجیم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و نستعینه و ونؤمن و نستهدیه به و عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من اعمالنا و نشهده اله الا الله وحده لا شریک له و, و على حبيبه و نجیبه و في خلقه حافظ سره و رسالاته بشير نعمته ونذير نذیر سيدنا ونبينا حبيب نبینا العالمين ابي القاسم محمد صل محمد و <تصحة> الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الخدات المهديين والله الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين انا نسبن مالك قال سمعت رسول الله يقول ايها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته و من, و من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت وكما انكم بالدنيا لم تكن وبالاخره لم تزل بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم اناس مالک نقلی دارند و بیان می کنند که بارها از رسول گرامی اسلام این نکات را شنیدم که میفرمود مردم تقوای الهی را اونگونه که شایسته است رعایت کنید و در راه رضای خدا سعی و تلاش و کوشش کنید و یقین پیدا کنید که این دنیا رختشنیست و فانی و زودگذر است و بدانید که آخرت باقی و جابدانه است نکته مهم کلام رسول الله اینجاست بزرگواران نبی گرامی اسلام میفرماید برای بعد از مرگ خیش عمل کنید یعنی خود را برای آخرت آماده کنید و تا مجال دارید و فرصت در اختیار دارید برای بعد از مرگ خود عمل کنید مثل اینکه که شما هرگز در دنیا نبوده اید و همیشه در آخرت هستید در خودبه اول موضوع سخن تا هفتههای هفته های گذشته پیرامون فریزه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود یکی از موضوعات اساسی که مطرح کردیم و در هفته گذشته مقداری پیرامون آن سخن گفتیم بحث از مصادیق معروف و منکر بود گفته شد ما در شرایط فعلی جامعهمون نیازمند به دو چیز هستیم اول اینکه که مصادیق معروف و منکر کدام است و نقطه دوم این است که معروف های اولویت دار و منکر های اولویت دار جامعه ما کدام است اگر بخواهیم معروفی را به جامعه معرفی کنیم اگر بخواهیم مردم را از منکری بازداریم کدام معروف در اولویت است و کدام منکر متناسب با فضای جامعه امروز ما در اولویت است منطقه های مراتب گفتیم قبل از تعین فهرستی از مصادیق بهتر آن است که ما به معرفی معیارهای معروف و منکر بپردازیم معیارهای معروف در جامعه کدام است معیارها برای شناخت منکر در جامعه کدام است اگر ما معیارها را شناختیم هم در حقیقت شناخت مفاهیم و مسادیق معروف و منکر برای ما آسان می شود و هم دیدگاه ها به هم نزدیک می شود برای شناخت معروف و منکر و علاوه بر همه اینها این, این معیار و این اصول و این ضوابط و قواعد به عنوان یک نورفکنی میمانند مانند که جهت اصلی را به ما نشان می دهند و از هر نوع برداشت نادرست و انحرافی ما را باز می‌دارند ما اولین معیاری که در خطبه گذشته مطرح کردیم که تحت پوشش این معیار مصادیق فراوانی از معروف و منکرها را می توان شناسایی کرد این بود گفتیم اگر امری در جامعه ما باعث بشود که ما در مسیر حرکت الهی گامبرداریم موجب رشد و کمال ما به جامعه بشود قطعا این به عنوان معروف شناخته می شود اما اگر امری، کاری، رفتاری، گفتاری ما را از مسیر حرکت از حرکت در مسیر الهی بازدارد جلوی رشد و کمال ما را بگیرد خطعا این ونوانه منکر شناخته می شود بنابراین تحت پوشش این میار کلی چه امری ما را در مسیر حرکت الهی قرار میدهد دهد چه امری ما را از مسیر حرکت الهی باز می دارد می فراوان و منکر های فراوان برای این موضوع مطرح کرد دو معیار دومی که باز مسادیق فراوانی هم در بعد معروف و هم در بعد منکر در جامعه می توان داد این است که موضوع تعابون بر بر و تقبا از یک سو و نقطه مقابل اون تعاون بر ظلم تعاون بر دشمنی تعاون بر فساد و گناه است در بین رفتارهای فردی ما در بین رفتارهای اجتماعی ما کدام یک از رفتارهای ما بعد همیاری کمک و همکاری در جهت تعاون بر بر و خیر دارد و کدام یک از رفتارهای ما گفتارهای ما سخنان ما مثلاق تعاون بر شر تعاون بر فساد، تعاون بر گناه تعاون بر دشمنی است. این به عنوان یک ذابطه و یک قاعده خوبی هرچه در بعد خیر در بعد تقوا باشد این میتواند مصداق معروف باشد هرچه در بوغ دامن زدن به فساد به ارتکاب گناه تو جامعه باشد این میشود مساق منکر قران هم تعبیر جالبی دارد تعاونوا علی البر و ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان این به عنوان معیار دیگر کلامی وجود مقدس امیر مؤمنان دارند کلام بسیار ارزشمندیست است میفرماید طلب و تعاون علا اقامت الحق دیانتون و امانه و طلب و تعاون علا اقامت الباطل خیانتون و جنایه تعبیر جالبیست طلب همیاری، طلب همکاری بر اقامه حق و بر پایی حق این در حقیقت یک نوع دینداری و یک نوع امانتداری است اما اگر ما به دنبال تعاون و یاری جستن بودیم بر اقامه باطل به تعبیر مولا این یک نوع خیانت و یک نوع جنایت در یک جامعه اسلامی است کار ما اقدام ما میخوایم حق را اقام کنیم در جامعه کار ما و اقدام ما باطل را به کرسی بنشانیم هر جا پای به کرسی نشاندن حق است دیانت و امانت است و هر جا پای به کرسی نشاندن باطل است اونجا جنایت و خیانت است میعارها معیارهای بسیار جالبی است امروز فضای بازارمون را نگاه کنیم فضای ادارات من را نگاه کنیم فضای مسئولانمون را نگاه کنیم فضای کسانی که تو جامعه برنامهی دارند کاری دارن مؤسسهی دارند. آیا جهدگیری و سوگیری و سمگیری این مؤسسات و مراکز و سخنان مسئولان و افرادی که تو جامعه زندگی می کنن در جهت اقامه حق است یا جهدگیری در جهت نهادی نکردن فساد نهادینه کردن اقامه باطل در جامعه است خود به خود مثلاق معروف و منکر تو جامعه برای ما روشن می شود معیاری که می برای شناخت معروف و منکر مطرح کرد عبارت از تقویت بنیه دین و دینداران در جامعه هست و نقطه مقابل اون تضعیف بنیه دین و دینداران در جامعه است هر جا کاری به تفریهت جبهه دینداران جمهه خدابابران بیانجامد، این عنوان معروف در جامعه است هر جا پای سست کردن بنیاد دین و جهدگیری دین کاری در جامعه انجام بگیرد این بعنوان مسئله منکر شناخته می شود و اولین اقدام من اینشالله در خطبه های بعد توضیح خواهم داد اولین اقدام در این راستا است که خودمان فهم عمیق از دین پیدا کنیم اگر ما فهم عمیق از دین پیدا کنیم جلوی سطحی نگری گرفتی می شود تحت تأثیر شبه که در جامعه به وجود میاد قرار نمی گیریم بنابراین هر جا هر قدمی که در جهت تقویت بنیه دین انجام میگیرد، گیرد و تقویت دینداران تقویت ارزشها، ها تقویت نیروهای ارزشی قرار میگیرد. گیرد اینجا به عنوان مصداق معروفه و نقطه مقابل اون منکر هست تعبیری باز امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد چقدر تعبیر جالبیت. می فرماید حفظ دین ثمرة المعرفه نتیجه و میوه شناخت حفظ دین است. یعنی آدمایی که شناخت بیشتر پیدا می‌کنند، فهم امید بیشتری در رابطه با دین پیدا می‌کنند. دین در اون جاها بهتر حفظ می‌شود و مندگار می‌ماند. دین در جامعه اگر سطح آگاهی‌های دینی افراد جامعه رشد کند. و به فراگیری و مسائل دینی طبعا همه با احکام الهی آشنا می شوند همه با مسائل دینی آشنا می شوند و در نتیجه خطا و اشتباه کمتر در یک جامعه رخ میدهد و اتفاق می افتد بنابراین نشانلا سعی کنیم که ما وجهه دینداریمون را بالا ببریم وجود مقدس معصوم عليه صلات و سلام تعبیر جالبی در اینجا دارند میفرمایند ولا تکونو که الجاهلیه لا فدینه ی تفقهون ولا ان الله ی خیلی تعبیر جالبی می فرماید مانند پیشگان دورانه جاهلیت نباشید مگه اینا چه ویژگی داشتند ستم پیشگان دوران جاهلیت میگه یکی از ویژگی‌هاشون این بوده که در دین تفقه نمی‌کردند تا دین در جامعه تقلیت بشود اینها همچنین در معرفت خداوند از خردشون بهره نمی بردن تا در نتیجه شناخت و معرفت در سطح جامعه بالاتر بردن اینشالله امیدوارم ما روز به روز هم با مصادیق معروف هم با مصادیق منکر و با میارهای شناخت معروف و منکر آشنابش بشویم تا فضای جامعه ما تبدیل به مدینه فاضله شود. إن الله يأمر بالعدل والإحسان و الاحسان و ایتائز القربا و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یعیزو ما را بیامست. به اسلام و اسلامیان عزت انایت فرودگارا ما را آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بده فرودگارا در فرج مولای من بفرما فرودگارا روح بلند رهبر فقید من آلیس بگردان به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب من عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما به مراجع بزرگوار تقلید من سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما به این مردم خوب ما وفادار به اسلام وفادار به ارزشها وفادار به انقلاب و نظام اسلامی عزت روزافزون مرحمت فرما به همه آنان حسن عاقبت مرحمت فرما به جوانان من غیرت دینی عنایت فرما به من پیروزی، به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت، به بانوانمون افتت، به آلمانمون توفیق عمل، به نیروهای خدمتگذار نظام اسلامی توفیق خدمت، این بفرما، باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی بگردان، این احسن الحدیث و عبلغ المعزه، كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ظنحر إنا شانعك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر اشفعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله شعنا من الشعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين با رأی الخلاص باعث با والمرسلين انبیای ونسلم على حبیبه و رسوله قاسم محمد، على آلِه الطیبین الطوّحین، اللهم صلّ و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 وعلى مصعب بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي السكري العسكري وعلى الحجه القائم المهدي حججك على عبادك وامناه في بهم نتغلّى ومن أعدائهم نتبرّئ إلى يوم القيامة إِبَادَ اللَّهِ بُسِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْبَلَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ أحب أن مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَقِلَّ اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَثْقَالَ النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ و من اح ان یک يكون اغن ناصفلیهکن ما اینند الله عد وجل او ت بمافیده. بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکن. رسول گرامی اسلام در این زیبا سخن فرمون کسی که مایل است ارجمنترین انسانها باشد تقوا پیش کند. و کسی که علاقمند است و دوست می‌دارد با تقواترین انسان‌ها باشد توکل به خدا کند و هر کس دوست می‌دارد ترین و بی‌نیاسترین انسان‌ها باشد نکته مهمی است اونچه در نزد خداوند است اعتمادش به او بیشتر باشد از اونچه در اختیار خود اوست این نشانه غنی بودن یک انسان است به اون چه در نزد خداست اعتمادش بیشتر باشد به اونچه در دسترس خود اوست در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره میکنم نکته اول باید تنیمانه و متواضعانه از شما مردم خوب هم عزیزانی که در اینجا حضور دارند و هم از همه ملت ایران و همه ارادتمندان عبی عبدالله الحسین به خاطر حماسه حضور در ازاداری دهه محرم به ویژه تاسعا و آشورا تشکر و قدردانی کنم ما امسال شاهد برخی جلوه از رویش های ازاداری آشورا بودیم، حضور چشگیر و پرشور جوانان در محافل دینی پای سخندرانی ها، ازاداری ها که این نشانه رویش های انقلاب ماست ویژگی دوم گسترش پدیده بسیار ارزشمند و تأثیرگذار مقتلخانی در ممبرها و مجالس ازاداری این روی کرده بسیار است مردم با واقعیتهای تاریخ آشورا در این مفتلخانی ها آشنا میشوند و نقطه سوم حضور دستهای ازاداری به صورت منظم با شعارهای آشورایی اینها نقطه قوت ازاداری مردم ما بود گرچه هنوز عباد ناشناخته از قیام و نهزت ابی عبدالله باقی مونده که توسط سخنبران، توسط مداهان و کسانی که ازای حسین ابن علی را می میکنند باید برای مردم شناسانده شود منتها من یک تقاضا دارم تغازای دشواری نیست اعظم الله حجور کن در رابطه با این ازاداری اما حسین ابن علی تنها مربوط به دهه محرم نیست حسین ابن علی تنها مربوط به تاسعاب آشورا نیست حسین ابن علی آشورایش و قیامش و نهزتش صدها و هزاران قیام دارد قیام حسین ضد ظلم است قیام حسین برای اقامه حق است قیام حسین برای دفاع از مظلوم است قیام حسین برای پیاده کردن احکام الهی نکند ما تا ظهر آشورا پرونده عزاداری را ببندیم و پرونده عرض ارادت به حسین ابن علی را ببندیم و از روز یازدهم به بعد احساس کنیم فضا همون فضا شرایط ما همون شرایط و که از حسین و آرمانهای حسین خداحافظی کنیم این رسم مسلمانی ما نیست حسین پیامش باید در طول 365 روز یا 366 روز در زندگی فردی و اجتماعی ما مسئولان ما پایبند باشند بازار ما پایبند باشند آلمان ما پایبند باشند حوزه های ما، دانشگاه های ما، جوانان ما، بانوان ما همه و همه احساس بکنند درستی فرا که هرگز در زندگی اونها فراموش شدنی نیست این ای بود که خواستم یاداوری کنم حسین را برای همه روز داشته باشیم نه برای چند روز نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که ما در فضای آشورای امسال و فضای دهه معرم شاهد یک اتفاق عجیب بودیم اون هم حضور. کم سابقه یا شاید می شود گفت در بعضی از جاها بی سابقه مردم در تشییع جنازه سخنگوی شهیدان به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب فرمودند شهید حججی خدا اراده کرد که ایشون را بنوان سخنگوی شهیدان قرار بده. خیلی گزارش ها تعجب آور است حضور مردم چه در مشهد چه در تهران چه در اصفهان و نجفابات از کردم یا بی سابقه بود یا کم سابقه بود و این نشان دهنده این است که مردم به شهیدانشون عشق میبرزند به جهاد در راه خدا عشق با همه تراحیهایی که دشمنان کردند که جهاد به فراموشی سپرده شود شهادت به فراموشی سپرده شود ولی موقعی که مردم در معرض یک امتحان قرار میگیرند به زیبایی از عهده امتحان برمیان و باید به این ملت آفرین گفت و این شهادت ملت ایران را در نزد جهانیان عزیز کرد ما از دیروز یا امروز. هفته نیروی انتظامی را داریم که امروز عزیزان نیروی انتظامی خانواده های نیروی انتظامی در این جایگاه نماز جمعه حضور دارند. حافظان نظم و امنیت حافظان ارزش انقلاب شهده نیروی انتظامی از اول انقلاب تا الان. گواه بر فداکاری و گذشت و ایسار این عزیزان در طول دوران انقلاب بوده هم در مرزها شهید دادن هم در دفاع مقدس شهید دادن و هم هر جا به حضورشون نیاز بوده قدم در میدان گذشت و ایثار و فداکاری گذاشتند. من یه تقاضا دارم از مردم ما درست تا پای امنیت به میان میاد نگاه ها متوجه نیروی انتظامی می شود ولی باید به سراحت عرض بکنم تک تک ما می توانیم نکشافرین باشیم در ایجاد امنیت نهادهای مختلف می توانن نکشافرین باشند در ایجاد امنیت تو جامعه ما بله درسته که اون چه به ذهن میاد نیروی انتظامی است ولی اگر همه ما دست به دست هم بدهیم طبیعتاً ما امنیتی را که امروز شاهد هستیم به خاطر این خمدلی ها و همفکری ها و همراهی است که با نیروی انتظامی و مسئولین زیرت داریم نکته مهمی که این هفته اتفاق افتاد و شاید چند روز قبل مسئله همه پرسی در اقلیم کردستان بود رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون تعبیری فرمودن،, فرمودن خیامت به منطقه و تهدید نسبت به آینده است ما به روشنی دست آمریکا به اسرائیل را در این برنامه میبینیم اگر نبود فراغ سبز سیونیستا این اتفاق نمی افتاد امروز باید کشورهای منطقه عراق، ترکیه، ایران، حتی سوریه در این جهت دست به دست هم بدهند اکنون که در مقابل فتنه جدیدی قرار گرفتند بعد از فتنه داعش باید اقدامی بکنند که در نتیجه دشمنان ما حواس نکنند هر روز یک حرکت ایزایی در منطقه ایجاد کنند ما به شدت این حرکت آمریکایی سهیونیستی را محکوم میکنیم کمترین آسیبی به کردهای همسایه ما وارد شود سالیانی ما در کنار هم زندگی کرده ایم. اما رهبران شما با همدستی که با دشمنان منطقه داشتند میخواهند شما را در یک باطلاق گرفتار کنند که موضوع تنها به کردستان و اقلیم کردستان خط نمی شود نقشه راهشون تجدیه در منطقه است و ملت ها باید در برابر این نقشه راه دشمن سخت اصطادگی کنند. موضوع دیگر موضوع میانمار است غصه همیشگی جهان اسلام آخرین خبری که ما داریم حدود 500 هزار نفر از خانه و کارشانشون آواره شدن الان در بیابنها بچه های کوچک از تشنگی و گرسنگی می میرند آبارن حتی لباسی برای پوشیدن ندارند تغذیه مناسب ندارند در اردوگاه که در بنگلادش تشکیل شده با یک وضع رقتباری زندگی می ارتش میانمار به کمک بودایی ها پاکسازی دارند و روزی حد اقل چار پنج هزار نفر آواره می شوند این یک مصیبت جانکاه هست و این مصیبت برمیگردد به اختلاف در جهان اسلام و عدم وحدت در جهان اسلام الدی نگاه دیگر و برنامه دیگری دارند که نتیجهش این است که مسلمانان قتل عام بشوند حادثه لاس‌وگاس آمریکا حادثه عجیبی بود اگر یک مسلمان این کار را انجام داده بود الان شما شاهد معرکه گیری دشمنان بودید این رادیوها و های به زبان فارسی سکوتی مرگبار کردند ما در اینجا این نکته این را میگیم: اگر کار داعش بوده که برگشته اون چرا که کاشید برگشته به خودتون و در نتیجه از شما هم انتقام خواهد گرفت و اگر کار داعش نیست از خود آمریکاست نشاندهنده دهنده واقعیت تلخیس در آمریکا جناب ترام به جای اینکه ایران را تهدید کنی به جای اینکه کره شمالی را تهدید کنی به جای اینکه برای ایران خط و نشان بکشی برای به جای اینکه تحریم نفتی را در رابطه با ایران مطرح کنیم به جای اینکه پایه‌های برجام را سست کنی به فکر ملتت و حیات و زندگی ملتت باش که مردم آمریکا نیازمندترن به توجه تا اینکه طمع به برزی و نسبت به جهان سوم و همه جهانیان چشم تمع داشته باشید ان دشمنان ناکام خواهند مد و آن چه میماند پیروزی و مجد و عظمت برای امت اسلامی ماست و نا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قناع اذاب النار پروردگارا ما را بیامرز به بی اسلام و اسلامیان عزت انایت دفرما پروردگارا کسانی که خدمتگزار گذار این نظام اسلامیان پروردگارا نیروهای انتظامی ما عزیزانی که در پوست خدمت میکنن چون روز هیفدهم مهرما روز جهانی پست است خدمت به فرهنگ کشور میکنن خدایا به همه آنان عزت عنایت بفرما پروردگا از تو میطلبیم توتعه دشمنان ما را به خودشون برگردان پروردگار به امام راحلمون روح و رزوان عنایت بفرما پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، اقتدار، طول عمر با برکت مرحمت بفرما به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما باران رحمتت را شامل حالمون بگردن پروردگارا به همه این جمع حسن عاقبت مرحمت بفرما إن أحسن الحديث وأبلغ الموعزة كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم